Surah Yunus. al-najm به نام الله که بخشا گنده با رحمت است قسم به آن ستاره که ناپدید شد یار شما محمد نه گمراه شده و نه منحرف گشته است و از روی هوای نفس سخن نمیگوید. این وحی است که به او نازل می شود آن کس که قدرتمنده است او را تعلیم داده است همان کس که تواناست و سلطه بر همه چیز دارد او در افق بلند آسمان قرار داشت سپس نزدیک و نزدیکتر شد تا فاصلش به اندازه طول دو کمان یا کمتر شد از خداوند به بندش آنچه را باید وحی میکرد وحی کرد دل آنچه را که دید دروغش ندانست آیا در آنچه میبیند با او مجادله میکنید؟ آن را بار دیگر دیده است نزد صدرت المنتها که جنت المعوا کنار آن است در این هنگام چیزی صدرت المنتها را پوچانده بود چشم او منحرف نگشت و از حد خیشم فراتر نرفت براستی پاره ای از آیات و نشانه های بزرگ پروردگارش را دید آیا بتهای لات و را دیدید و مناط بت سوم دیگر آیا سهم شما پسر است و سهم او دختر این تقسیمی ناادلانه است اینها فقط نامهایی است که شما و پدرانتان برانها گذاشته اید و خداوند هرگز بران دلیلی نازل نکرده است. آنها فقط از گمان خود و هوای نفسانیشان پیدوی میکنند حالان که هدایت از جانب پروردگارشان به سراغشان آمده است. آیا؟ هر چه انسان آرزو کند برایش است آخرت و دنیا هر دو از آن خدا است. چه بسیار فرشتگانی در آسمان ها وجود دارند که شفاعتشان هیچ سودی ندارد مگر بعد از آن که خدا اجازه دهد آن هم برای کسی که سلاح بداند و راضی باشد کسانی که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را نامگذاری زنانه می کنند. در حالی که نسبت به آن علم و آگاهی ندارند. آنها فقط از گمان خود پیروی میکنند و گمان و پندار کسی را از شناخت حق بی نیاز نمیکنند. از کسی که از یاد ما روی برگردانده است اعراض کن زیرا چون این کسی خواستار چیزی جز زندگی دنیا نیست. نتیجه دانششان همین است راستی پروردگارد به آن که از راهش گمراه شده و نیز آن که هدایت یافته از هر کس دیگر آگاه تر است آنچه در آسمان و آنچه در زمین است از آن خداست تا بدکاران را به خاطر عمل کردشان که و نیکو کاران را به پاس نیکیشان پاداش عطا نماید کسانی که از گناهان کبیره و زشتی ها به غیر از صغیره اجتناب میکنند، بدانند که مغفرت پروردگارت وسیع است و او نسبت به شما از آن هنگام که شما را از زمین خلق کرد و آن هنگام که به صورت جنین در شکم مادرتان بودید آگاهتر است خود را بیگناه گناه ندانید زیرا خدا کسانی را که حرمت حریم الهی را نگاه میدارند، خوب می شناسد. آیا آن کس را که از حق رویگردان گردان شد دیده ای؟ اندک می بخشید و بخ می برزید. آیا او علم غیب دارد و می بیند؟ آیا از آنچه در کتب موساست بیخبر است؟ و یا از ابراهیم که حق توحید را ادا کرد بیخبر است؟ الا تزر وازره وزر هیچ کس بار گناه دیگری را بردوش نمیکشد. نمی کشند. دستاورد انسان جز تلاش و کوشش او نیست تلاشش به زودی دیده خواهد شد به نتیجه میرسد سرانجام به او پاداشی تمام دهند پایان را همه به پروردگار تو خط می شود و اوست که می و میگریاند، اوست که میمیراند و زنده می کند. اوست که جفتهای نروماد در آفریده است آن هم از نطفهی که ریخته می شود. به عده خداوند است ایجاد عالم دیگر خداست که بی نیاز می کند و سرمایه می بخشند. اوست پروردگار ستاری شعرا اوست که عاد آن قوم پیشین را نابود ساخت و از قوم سموند کسی را باقی نگذاشت و پیش از آنها قوم نو را هلاک کرد که تمکارتر و سرکشتر بودند شهرهای قوم لوط را زیر رو کرد و آنها را پوشاند و چه پوشاندنه پس به کدامی نعمتهای پروردگارت شک می کنی این ای از هشدار دهندگان قبلی است قیامت نزدیک شده است <برك> <تسجن> کسی جز خداوند آشکارش نکند آیا از این سخن تعجب می کنید و می خندید و گریه نمی کنید شما از حقایق قافلید پس خداوند بزرگ را سجده کنید و او را بپرستید و, و تبکون و سامدون